خائن. روزی روزگاری پادشاهی در ایرلند زندگی میکرد که فقط یه پسر داشت یه روز صبح وقتی خدمتکارا از خواب بیدار شدن حیات قصر را انباشته از پرنده های عجیب دیدن این خبر به پادشاه رسید و اون دستور داد کاری به کار پرنده ها نداشته باشن تا خودش از رختخواب بیرون بیاد و ببینه چه خبره اونا هم دیگه توجهی به پرنده ها نکردن پسر پادشاه تو خواب بود و گفتگوی خدمتکارا رو شنید. از رخت خواب بیرون اومد. لباس پوشید و از پنجره به بیرون نگاه کرد. با دیدن اون پرنده های قریب تو حیات فورا توفنگش و برداشت و شلیک کرد و پای یه اقاب و زخمی کرد. وقتی کمی بعد پدرش از خواب بیدار شد و دید که اقاب میلنگه از اون پرسید که دلیل لنگیدنش چیه و راه درمانش کدومه؟ اوقاب گفت. پسر خودت منو زخمی کرد و به هیچ طریقی درمان نمیشم مگه با گوشت هفت گاو هفت ساله. پادشاه گفت چیز زیادی نمیخوای و هر وقت اراده کنی اونو در اختیارت میذارم. اون وقت اقاب به کسایی که تو حیات بودن گفت برن مگر پسر پادشاه. همه حیات رو ترک کردن و بعد از رفتن اونا اوقاب به شاهزاده گفت که بر پشتش سوار بشه. شاهزاده کاری رو که اوقاب گفت انجام داد. اما دیگه نتونست پایین بیاد چون اقاب بلند شد و اونو با خودش به دنیای غرب برد. اقاب پسر یه جادوگر پیر بود. اقاب بعد از اون که به یکی از خونه های جادوگر رسید، فرود اومد. به مادرش گفت که پاش زخمی شده و کسی که اونو زخمی کرده اسیر شده. تو این مدت پادشاه و تمام ها منتظر برگشتن اقاب و شاهزاده بودن. وقتی شب شد، اونو از سرما به داخل قصر رفتن و بازم منتظر شدن. ولی هیچ خبری از عقاب و شاهزاده نشد. جادوگر پیر به دختر خدمتکار گفت که شاهزاده را به تخت خوابش هدایت کنه و کمی نوشیدنی سبک به اون داد تا به شاهزاده بده. دختر شاهزاده را به تختخوابش فرستاد، اما این همون تختخوابی نبود که جادوگر براش در نظر گرفته بود. دختر به جای اون تختخواب یه تختخواب راحت و زیبا برای شاهزاده فراهم کرد و گفت که جادوگر سه مأموریت سخت به اون خواهد داد. کارهایی که از عهده کی ساخته نیست و قول داد که در انجام اونها به اون کمک کنه اون نباید خودشو به و غمگین بشه صبح روز بعد بعد از اون که شاهزاده از خواب بیدار شد جادوگر پیر به اون گفت که باید برکه ای رو که در انتهای حیات هست خوش کنه و حلقه طلایی رو که مادر بزرگش 700 سال پیش اونجا گم کرده بود پیدا کنه و این کار رو باید قبل از غروب خورشید انجام بده تا یه جام به شاهزاده داد تا با اون آب برکه رو خالی کنه. شاهزاده رفت و دست به شد اما بیفایده بود چون به محض اینکه یک لیوان آب از برکه بیرون میریخت هفت لیوان آب به درون برکه سرازیر می زیر اون مدتی بعد یه گوشه نشست و همونجا مون تا خدمتکار شامش رو آورد. پیش از اینکه شامش رو تموم کنه، دختر آب برکه رو خالی کرد و حلقه رو پیدا کرد. دختر به شاهزاده گفت بیا اینم حلقه. از اون خوب نگهداری کن چون ممکنه بعدن به دردت بخوره اون وقت راه خودش رو گرفت و رفت و شاهزاده تا دیر وقت شب همونجا موند بعد پیش جادوگر رفت و به اون گفت که حلقه رو پیدا کرده اما جادوگر حلقه رو ازش نگرفت و این موضوع شاهزاده رو خیلی خوشحال کرد وقتی شاهزاده به رخت خواب رفت جادوگر به خدمتکار گفت که مثل شب اول کمی نوشیدنی سبک به اون بده اما خدمتکار اصلا به حرف اون توجهی نکرد و در عوض شام العاده ای با انواع خوردنی ها تهیه کرد و شاهزاده بعد از خوردن اون به خواب رفت. صبح روز بعد وقتی شاهزاده از خواب بیدار شد، جادوگر پیر چنگالی سشاخی به اون داد و گفت که باید استبل رو تمیز کنه. استبلی که 700 عصب به مدت 700 سال تو اون بودن و، سوزنی را که مادر بزرگ مادر بزرگش اونجا گم کرده بود پیدا کنه شاهزاده به استبل رفت و شروع کرد به بیرون ریختن پهن اصبا اما با هر سرعتی که کار میکرد بیفایده بود چون هر بار که به اندازه یه چنگال پهن بیرون می ریخت، هفت چنگال به داخل استبل برمیگشت و این وضع ادامه داشت تا اینکه خدمتکار با غذا اومد در مدتی که شاهزاده قضاش می‌خورد میخورد، دختر استبر رو تمیز کرد و سوزنی رو که 700 سال پیش گم شده بود پیدا کرد. سوزن رو به شاهزاده داد و گفت خودش از اون نگهداری کنه و اونو به جادوگر پیر نده. دختر به خونه برگشت و به هیچ کس حتی یک کلمه هم در مورد کاری که کرده بود حرف نزد. قسمتی از شب گذشته بود که شاهزاده ایرلندی اومد و به جادوگر گفت که سوزن رو پیدا کرده. جادوگر کنار آتیش نشسته بود و حتی یک کلمه هم به زبون نیاورد و این همون چیزی بود که شاهزاده آرزو میکرد. وقتی زمان رفتن به رخت خواب رسید، جادوگر با بد اخلاقی خدمتکار را صدا زد و به اون گفت که نوشیدنی سبک را به شاهزاده بده و فوراً به رخت خواب بره. اما شاهزاده به اون نوشیدنی لب هم نزد چون به جای اون خدمتکار یه شام فوقلاده از بهترین خوراکی ها فراهم کرده بود. شاهزاده پس از خوردن غذا به تخت خواب رفت و دختر هم در رخت خوابی خوابید که روی زمین برای خودش پهن کرده بود صبح روز سوم جادوگر پیر یه تیشه به دست شاهزاده داد و اونو به کنار در ورد و درختی بزرگ رو که جلوی در رویده بود به اون نشون داد جادوگر به شاهزاده گفت که درختو قطع کنه و ای رو که بالای اون بود برداره توی جعبه اردکی روی تخم نشسته بود که شاهزاده باید قبل از گروه خورشید اون تخم رو برای جادوگر میبرد. شاهزاده به کنار درخت رفت، تبر کوچیک رو بالا سرش برد و چنان ضربه محکمی بر تنه درخت زد که تبر تا تحت در اون فرو رفت. تبر رو بیرون کشید تا ضربه دیگه ای بزنه. اما به محض بیرون اومدن تبر سیلابی از خون چنان با سرعت از درخت خارج شد که بلافاصله فاصله حوزی خونین رو دور خودش شکل داد. شاهزاده مجبور شد فرار کنه چون حوز خون هر لحظه بزرگتر و بزرگتر میشد. در همین موقع خدمتکار با غذا اومد و در مدتی که شاهزاده مشغول خوردن بود به تنهایی درخت و قرد کرد وقتی درخت افتاد اردک پرواز کنان دور شد و تخم درون حوض خون افتاد شاهزاده دست و پاشو گم کرد چون فکر میکرد، که حالا یافتن تخم به گردن اونه اما دختر خودش رو به شکلی سمور آبی در آورد و توی چشم به هم زدن تخم رو از کف حوض خون بیرون آورد بعد به شاهزاده گفت که از تخم در کنار حلقه و سوزن به خوبی محافظت کنه اون وقت رفت و شاهزاده همانجایی جایی که بود موند با تاریک شدن هوا شاهزاده پیش جادوگر رفت و گفت که تخم رو به دست آورده و دیگه حرفی نزد ولی جادوگر وانمود کرد که حرفش رو نشنیده وقتی زمان رفتن به رختخواب رسید، جادوگر به خدمتکار گفت که کمی نوشیدنی سبک به شاهزاده بده و بعد خودش هم بخوابه. اما هیچ از آن دو به رختخواب نرفتن و در عوض غذا پختند و خودشون رو آماده کردند تا همون شب به ایرلند برگردند. در طول شب جادوگر سه بار از اونها پرسید که آیا خوابیدن یا خیر. بار اول اونا گفتند که هنوز نخوابیدن. بار دوم جواب دادن که تازه دارن می‌خوابن. و سوم جادوگر جواب سوالش رو نگرفت چون دختر و شاهزاده به شکل دو شاهین پرواز کرده و رفته بودند اونا پرواز کنان رفتند و رفتند تا اینکه دختر به شاهزاده گفت که به عقب نگاه کنه و ببینه آیا کسی در تعقیب اونا هست یا نه شاهزاده به پشت سرش نگاه کرد و گفت دو نقطه رو میبینم به کوچکی دو پرنده که دنبال ما میان ولی فاصله زیادی از ما دارن دختر گفت دوباره نگاه کن شاهزاده گفت حالا شبیه دو توده ی الف هستند دختر گفت اونا جادوگر و پسرش هستند که ما رو تعقیب میکنن شاهزاده یک بار دیگه به عقب نگاه کرد و گفت حالا شبیه دو کوه شدن دختر گفت حلقه رو پشت سرمون بنداز به محض اینکه شاهزاده حلقه رو انداخت کل زمین های پشت سرشون در دریاچه بزرگ و وسیع فرو رفت طوری که جادوگر و پسرش نتونستن از اون بگذرن جادوگر به پسرش گفت به خانه برو و سطل بزرگی رو که کنار در هست بیار تا آب دریاچه رو خالی کنیم. پسر رفت و سطل رو آورد. اونا دریاچه رو خوش کردند و با شتاب پیش اومدن. دختر به شاهزاده گفت: حالا به پشت سرت نگاه کن و ببین اونا میان یا نه. شاهزاده گفت: اونا پشت سرمون میان و شبیه دو پرنده هستند. دختر گفت: دوباره نگاه کن. شاهزاده گفت: حالا شبیه دو توده علف هستند. برای بار سوم نگاه کن. شاهزاده گفت حالا مثل دو کوه شدن دختر گفت سوزن رو پشت سرت بنداز شاهزاده سوزن را پشت سرش انداخت و لحظه ای بد کل زمین های پشت سرشون پوشیده از میخای فولادی قول پیکر شد که همچون جنگلی متراکم اما بیشاخ و بعد در برابر جادوگر و پسرش قرار گرفت جادوگر به پسرش گفت فوراً به خانه برگرد و چکاشی را که زیر تخت خواب گذاشتم بیاورد پسر رفت و خیلی زود با چکاش بزرگ و سنگین بازگشت و به کمک اون راهش رو از میان میخای فولادی گشود و بار دیگه به اتفاق جادوگر پیش اومد. خیلی زود دوباره دختر به شاهزاده گفت به عقب نگاه کن و ببین آیا اونها میان؟ حالا فقط چیزی به بزرگی یک پرنده رو میبینم که در تعقیب مونه. دختر گفت اون خود جادوگره که پشت سر ما میاد. پسرش خسته شده؟ فوراً تخم رو در بیار و اگه نشانه گیرید خوبه همین حالا باید اونو ثابت کنی. سینش رو هدف بگیر. اگه به هدف نزنی هر دو در چنگال مرگ اسیر خواهیم شد. وقتی جادوگر به اونا نزدیک شد، شاهزاده تخم رو به طرفش پرتاب کرد. اون طبقه گفته دختر سینه چپ جادوگر رو نشانه گرفت. سر باریک تخم مستقیما وارد بدن جادوگر شد و ته پهن اون نیز به دنبالش خون از بدن جادوگر جاری شد. و بعد از مدت هیجان داد. آنگاه دختر و شاهزاده به دنیای قرب و به دربار پدر شاهزاده در ایرلند رفتند. وقتی آقابت به قصر رسیدند، دختر به شاهزاده گفت که داخل شود و خودش می‌خواست بیرون منتظر بماند. او گفت، من با تو وارد قصر نمی شوم، اما به من قول بده که نه کسی را ببوسی و نه اجازه بدهی کسی تو را ببوسد. چون اگر چنین کنی، از آن لحظه به بعد مرا به کلی فراموش خواهی کرد. شاهزاده با بیمیلی او را ترک کرد و به تنهایی وارد قصر شد. پدرش و تمام درباریان به گرمی از او استقبال کردند. شاهزاده مراقب بود که نه کسی رو ببوسه نه اجازه بده کسی اون رو ببوسه. اما سگ شکاری پیرش که کنار آتیش نشسته بود از فرط خوشحالی بالا پرید تا به اون خوشامد بگه و صورتش رو لیسید. از همون لحظه شاهزاده دختر رو که بیرون منتظرش بود فراموش کرد. درست همونطور که دختر گفته بود. دختر بعد از اون که از انتظار خسته شد پای پیاده در جاده راه افتاد تا اینکه روشنایی روز جاش رو به تاریکی شب داد و شب نمباریدن گرفت. اون بالای یکی از درختای بیت رفت و روی یکی از شاخه‌ها خوابید. زیر درخت رودخونه جاری بود و ماه در آسمون بالای سرش به روشنی می درخشید. کمی دورتر از اونجا خونه یه آهنگر بود نیمه های شب آهنگر تشنه شد و به دخترش گفت که به کنار رودخونه بره و کوزه ای آب براش بیاره دختر کوزه رو برداشت و به کنار رودخونه رفت وقتی خم شد تا کوزه رو پر کنه عکس دختر زیبای بالای درخت را توی آبی که از نور ماه روشن شده بود دید و فکر کرد که تصویر خودش رو میبینه پس به جای اینکه که کوزه رو پرکنه، اونو از خشم به گوشه ای پرتاب کرد و گفت که زنی به زیبایی اون نباید برای یه آهنگر زشت آب ببره. اون وقت رفت و آهنگر دیگه هرگز اونو ندید. وقتی برگشت، آهنگر یکی از دختراش رو برای آب فرستاد، اما همین داستان برای اونم تکرار شد، آهنگر همسرش رو برای آوردن آب فرستاد همسر آهنگر وقتی صورت زیباش و تو آب دید هفت مرتبه تر از دختراش شد و گفت برای من مایه خجالتی که همسر و بردهی آهنگر باشم منی که به این زیباییم بنابراین از اونجا فرار کرد و دیگه پیش شوهرش برنگشت آهنگر که خیلی تشنه شده بود خودش بیرون رفت تا آب بیاره اونم اون, اون تصویرو تو رودخونه دید ولی خوب میدونست که اون تصویر زنه پس به بالا و روی درخت نگاه کرد و دختر و دید و گفت تو هممونو دست انداختی؟ دختر گفت شاید اینطور باشه. آهنگر گفت همین حالا پایین بیا و برای من خونهداری کن چون تقصیر تو بود که همسر و دختران منو ترک کردن. دختر از درخت پایین اومد و به خونهداری برای آهنگر مشغول شد تا اینکه یه روز خبر عروسی شاهزاده به گوشش رسید. آهنگر به دختر گفت اگه به عروسی بری شاید کاری به تو بدن و چیزی گیرت بیاد. دختر رفت و به جمع خدمتکارای پادشاه پیوست. اونجا شنید که قراره که شب قبل از عروسی کیکی بپزن و از سراشپس پرسید ممکنه من این کیک رو بپزم؟ سراشپز عصبانی شد و گفت تو نمیتونی این کیک رو بپزی؟ بعد دختر پنج سکه طلا به اون داد و سراشپز هم اجازه داد که اون کیک رو بپزه؟ دختر کیک و پخت و قصر جادوگر، استب، درخت و دریاچه رو در اون قرار داد تا شاهزاده بتونه اونا رو ببینه. همه با دیدن کیک گفتن باید یه غریبه تو قصر باشه. پادشاه گفت اونو پیش من بیارین. دختر پیش پادشاه رفت و در کنار مهمان نشست. در طول شب همه قصه تعریف کردن و عاقبت پادشاه ایرلند به دختر گفت حالا تو باید برامون قصه بگی؟ دختر گفت من قصه ای ندارم اما اگه اجازه بدید براتون یه تردستی اجرا میکنم پادشاه گفت با کمال میل دختر دو دونه جو به زمین انداخت و اونا رو تبدیل به یه خروس و یه مرغ کرد. بعد یه دونه جو بین اونا انداخت مرغ دونه رو برداشت و خروس اونو با نک زد مرغ گفت وقتی داشتی استبلو تمیز میکردی و من باید به تو کمک میکردم چنین کاری با من نمیکردی دختر یه دونه دیگه انداخت باز هم مرغ دونه رو برداشت و خروس اونو اون زد مرغ گفت روزی که داشتی دریاچه رو خشک می کردی و دنبال حلقه میگشتی همچین کاری با من نمی کردی دختر دونه سوم انداخت و مرغ اون و برداشت و خرص اون زد روزی که داشتی درخت بزرگ و میبریدی تا جعبه و تخم درون اونو برداری و روزی که با هم فرار کردیم چنین کاری با من نمی کردی شاهزاده یهو یاد دختر افتاد و همون لحظه اونو شناخت بعد روبه پدرش کرد و گفت با هیچ کی از این زن ازدواج نمی کنم و پسر پادشاه ایرلند با همان دختری که خدمت کار جادوگر بود ازدواج کرد. اون دو بعد از اون به خوبی و خوشی با هم زندگی کردند. پایان کانال تلگرامی هزار های داستانهای ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me/mehrandoosti t.m e/m e h r a n d o u s t .me i نشانی وبلاگ ما m e STI.BLOGFA.COM t مهران دوستی کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی